آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند بر جای بدکاری چون من یک دم نخوکاری کند اول به بانگ ناوی نی آرد به دل پیغام وی وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند دلبرک جان فرسوب دزود کام دلم نکشود از او نومید نتبان بود از او باشد که دلداری کند گفتم گره نکشودم زن تو رتا من بودم گفتم منش فرمودم تا با تو تراری کند پشمین پوش توند خوب از عشق نشنیده است بود از مستیش رمزی بگو تا ترک حشیاری کند چون من گدای بین نشان مشکل بود یاری چونان سلطان کجا ایش نهان با رند بازاری کند زن طره پرپی چو خم سهل است اگر بینم ستم از بند و زنجیرش چه غم هرکس که ای کند شد لشکر غم بیعدد از بخت می خواهم مدد تا فخر دین عبد و باشد که غمخاری کند با چشم پرنی رنگ او حافظ مکن آهنگ او کانتوره رنگ او بسیار تراری کند